الا قمیه هفته همه بشنو، گوش کن از کسی که برای اولین بار در عمرش به اذان صبح گوش می دهد، بپرسید صدایی که می شنود به چه می ماند احتمالاً چونین می گوید اسرارامیز، غیر مسهور کننده اما در عین حال ماوراءالطبیعی فراتر از ادراک حتی تکاندهنده دهنده درست مثل عشق این بود صدایی که در تاریکی شب الا روبینشتاین را از خواب بیدار کرد به سرعت بلند شد گیج شده بود نمیدانست چیست صدای ای که از پنجره به گوش میرسد. چند ثانیه طول کشید تا به یاد آورد دیگر در آمریکا در ماساچوست نیست جایی که در آن بود خانه مجلل و بزرگی نبود که به اتفاق شوهر و فرزندش در آن زندگی می کرد همه اینها به زمانی دیگر تعلق داشت زمانی چنان دور که دیگر به نظرش نه مثل گذشته خودش بلکه مثل قصه های پریان می رسید نه در ماساچوست نبود در آن طرف دنیا بود در قونیه در بیمارستانی ساده بود که بوی دارو و مواد ضد افونی کننده میداد و آدمی که به صدای دم و باز دمش گوش میداد مردی نبود که بیست سال شوهرش بود بلکه مردی بود که تابستان گذشته در روزی آفتابی به خاطرش شوهرش را ترک کرده بود چراغ رومیزی را روشن کرد در نور کهربایی رنگی که چهرش را ملایمتر نشان میداد داد دور برش را نگاه کرد تا ببیند در عرض آن یکی دو ساعت چیزی در اتاق تغییر کرده یا نه؟ توی کوچکترین اتاق بیمارستانی بود که در عمرش دیده بود. البته نمیشد گفت الا در طول عمرش خیلی اتاق بیمارستان دیده. تخت بیمار درست وسط اتاق قرار داشت. جای دیگر وسایل اتاق را قفصه ای درهم و برهم، کمدی چوبی، سندلی ها، گلدان پر از گل بابونه، میزی پر از قرص و دوا با توجه به تخت چیده بودند. کتابی که عزیز میخواند در گوشه تخت بود. من و مولوی چهار روز بود که به قونیه آمده بودند. چند ساعت اول را در شهر مثل دیگر توریست ها بودند موزه ها و بناهای یادبود را گشته بودند از کوچه ها و ساختمانها عکس گرفته بودند غذاهای محلی خورده بودند به عادیترین چیزها هم با دقت توجه کرده بودند تا دیروز همه چیز بر وفق مراد بود اما روز گذشته موقع نهار حال عزیز به هم خورد و با عجله به نزدیکترین بیمارستان رساندندش از آن لحظه به بعد بی آنکه بداند به چه چی چیز باید امید داشته باشد اما باز بی آنکه امیدش را از دست بدهد انتظار میکشید الا و از طرفی هم پیش خدا شکایت می کرد را که این قدر دیر به من عطا کردی این قدر زود میخواهی از دستم بگیری؟ این کارت عادلانه نیست یا نباید اصلا عشق را عطا می کردی، یا اینکه باید میگذاشتی با عشق زندگی بکنم به مردی که روی تخت خوابیده بود عاشقانه نگاه کرد. پرسید: عزیزم: خوابی راستش نمیخواست بیدارش کند. اما در آن لحظه خیلی احتیاج داشت که صدایش را بشنود. نتوانست جلو خودش را بگیرد. یک بار دیگر صدایش کرد. عزیز ریتم یک نواخت نفس کشیدن بیمار لحظه ای مختل شد. در ریتم آهنگ یک نوت خارج نواخته شد. اما ادامه پیدا نکرد. الا صدایش را بلندتر کرد و دوباره پرسید. خوابی؟ عزیز با لحنی شوخ گفت. خواب بودم. چه شده عشق من؟ خواب از سرت پریده الا گفت از آن صبح تکانم داد و سکوت کرد انگار این چهار کلمه همه چیز را توضیح میداد داد وضعیت سلامت عزیز را که رو به وخامت می رفت ترس از دست دادنش را دیوانگی به نام عشق را و اتفاقاتی را که برایشان افتاده بود، خلاصه می کرد. عزیز به زحمت روی تخت نشست. از چشمان سبزش درد خانده می شد. صورت خوشترکیبش زیر نور چراغ در میان ملافه های سفید پجمرده به نظر می رسید. با این حال باز حالتی آرام و مطمئن داشت. عزیز زمزمکنان گفت: « از آن صبح همیشه به نظرم حالتی خاص داشته. کسانی که به این صدا عادت کرده اند آن را نمی توانند مثل تو بشنوند. آنقدر شنیدند این صدا را که متوجه افسونش شوند. اما خارجیها وقتی از آن صبح را می شنوند میلزند و ماتشان میبرد میگویند نماز صبح میان نمازهای پنج پنجگانه از همه با ارزش است و در عین حال از همه دشوارتر. پرسیدم: چرا ؟ گفت لابد به این خاطر که از خواب شیرین بیدارمان می رؤیایمان رویایمان را نیمه کاره میگذارد. و به حقیقتی دیگر دعوتمان کند. برای همین سخت است در اذان صبح ای است که در دیگر اذانها نیست نماز از خواب بهتر است الا با خود گفت اما برای ما دو نفر شاید خواب بهتر باشد کاش با هم به خواب میرفتیم. خوابی عمیق و آرام از آن خوابهایی که حتی توپ هم بیدارمان نکنند، مثل زیبای خفته به خوابی سهرامیز می رفتیم و صد سال دیگر بیدار می شدیم. کمی بعد از آن به آخر رسید. پجواکهایی که از دیگر مسجدها می آمد نیز یک به یک خاموش شد. آخرین نوت که از آسمان پر سکوتی اسرارآمیز حاکم شد الا در آن سکوت به خواب رفتن دوباره عزیز را تماشا کرد یک سال را با هم گذرانده بودند سالی پربار عزیز تا دو هفته پیش چنان در برابر بیماری مقاومت کرده بود که باعث تعجب دکترها شده بود چنان قبراق بود که به هر سفری می رفتند، نور و انرژی از خود می پراکند با هم بودنشان چنان بود که هیچ روزشان به روز قبلش نمی مانست و زندگی خود را تکرار نمی کرد الا راضی بود از به هم خوردن روال عادی زندگیش چه زیبا بوده یکی را با عشق و آگاهی و سپاس دوست داشتن الا قبلا معتقد بود باید مدت زیادی بگذرد تا آدمها همدیگر را بشناسند اما الان فکر می‌کرد مفهوم زمان انواع گوناگونی دارد یعنی سعی می‌کنیم با یک کلمه چند چیز را توضیح بدهیم زمان یک روند یک و مکانیکی عادتهای خسته کننده، کارهای کسالت آور و درجا زدن دائمی است زمان دو جریانی است پر از اسرار و شگفتیها افت و سریع و در عین حال سرگیجه آور زمان سه زمان مطلق خداست زمان یک و زمان دو با سرعت یکسانی جریان ندارند. زمان سه اما همه چیز را دربر میگیرد و زمانهای دیگر را هم می و هم می زاید. الا خم شد و پیشانی عزیز را آرام بوسید. این تن که در یک سال گذشته دیوانوار دوستش داشت در نظرش چیزی بیش از تنی مردانه بود انگار نوعی معبد بود به همین سبب اینکه عزیز در پیش چشمانش روز به روز بیشتر آب میشد در وجود الله نه آرزوی دور شدن پدید آورده بود و نه حس حسهطرحم عزیز چشمه بود که هر قدر بیشتر از آن میآشامید آشامید، تشنه تر می پس اگر زنی آشق روح مردی شود، وجود نظار و بیمارش را نیز می تواند دوست داشته باشد. اگر این را به زبان می آورد، کسی پیدا می شود که درکش کند. سرم، از شیشههای بالای سر بیمار تپ می چکید و به بدن ضعیف بیمار قطره قطره زندگی میفرستاد. اما اللا میدانست که عزیز برای مردن به قونیه آمده. هیچ شیشه سرمی هیچ دستگاه تنفسی نمی توانست این واقعیت را تغییر دهد چشمهایش پر عشق شد، حال که به خودش قول داده بود گریه نکند. بیشتر نتوانست آنجا بماند، از اتاق بیرون آمد. از راهروهای سفید رنگ که روح انسان را سیاه می کرد، گذشت. از لای درهای نیمه باز به دیگر مریسها نگاه کرد. این همه آدم، پیر و جوان، زن و مرد، یکی چاق، یکی با گونه های فرو رفته، یکی خندان، یکی گریان. بعضی ها برگشتند و با علاقه به این زن آمریکایی کنجکاو نگاه کردند که از لای در سرش را تو آورده بود. بعضی ها اهمیتی ندادند. از بس درد داشتند. پنج دقیقه بعد الا کنار حوز رسید که در باغچه کوچک اما زیبای بیمارستان قرار داشت. درست وسط حوز یک مجسمه فرشته گذاشته بودند. کف حوز هم سکههایی برق برغ که کسی نمیدانست پنهانترین آرزوهای چند انسان را می دانند. الا جیبهایش را گشت تا سکی پیدا کند. اما بیهوده، جز یادداشتهایش و خورده بیسکویت چیزی پیدا نکرد. کمی آن طرف چند سنگریزه صاف و براق توجهش را جلب کرد. یکی از سنگریزه ها را برداشت، چشمهایش را بست آرزویی کرد که میدانست تحققش محال است. بعد سنگریزه را به طرف حوز انداخت. اما سنگریزه به جای آنکه توی حوز بیفتد، صاف رفت و توی بغل مجسمه افتاد. با خودش گفت: اگر عزیز اینجا بود این را حتماً نشانه چیزی می‌دانست نیم ساعت بعد که به اتاق برگشت با دکتری سیبیلو و پرستاری محجبه روبرو شد داشتند روی صورت بیمار ملافه می‌کشیدند عزیز زکریا بی بی‌صدا از دنیا رفته بود مثل مولوی که شیفته اش بود وصیت کرده بود در قونیه دفنش کنند الا همه چیز را تدارک دید عادتش به برنامه ریزی این بار به کار آمد اینکه زن توریست تنهایی است که از کاغذ بازی سر در آورد، گاه به دردش خورد و گاه باعث دردسرش شد در گورستان قدیمی مسلمانان زیر یک درخت مگنولیای لطیف جایی برای عزیز پیدا کرد. قطع خاکی چهارگوش. شب همان روز برای دوستان عزیز در چهار گوشه دنیا ایمیل فرستاد و همه را یکی یکی برای مراسم دعوت کرد. در این میان به طور تصادفی با نیزنها، قدوم زنها و سما زنهای مولویه آشنا شد و به مراسم تشیع جنازه دعوتشان کرد. آدمهایی که فکرش را نمیکرد کمکهایی کردند که انتظارش را نداشت. عزیز اگر زنده بود، احتمالا لبخند میزد. مگر چیزی به اسم تصادف هم وجود دارد الا روز دفن آنقدر آدم آمد که الا فکرش را هم نمی کرد. از جاهای دور از کیپ تاون سان پیترسپورگ، مرشداباد و ساوپولو صوفی برای شرکت در مراسم آمده بودند در کنارشان عکاسها کادسیین ها، روزنامه نگار ها، نویسنده ها،, ها، بانچدارها، تاجرها، کشاورزها، شاعرها، نقاش ها، استادان یوگا هم بودند و همینطور دو جوانی که عزیز به فرزندی پذیرفته بود. آنها هم آنجا بودند. به این ترتیب تشیع کنندگانی با زبانهای مختلف و اعتقادات گوناگون عزیز را در آخرین سفرش بدرقه کردند بعضی مهمانها بچههایشان را هم آورده بودند بچههایی از هر سن و سال که با بچههای کوچههای اطراف دور هم جمع شدند بازی کردند دعوا کردند ترقه ترکاندند فشفشه هوا کردند کسی دخالت نکرد شاعری مکسیکی پندمورتوس نان مردگان پخش کرد یکی از دوستان قدیم اسکاتلندی عزیز روی سر جمعیت کاغذهای رنگی ریز ریخت نیزنها نیزدند سما زنها چرخ زدند مرگش را جشن گرفتند چون خودش این طور شادی به جای ماتم تشیی جنازهی شبیه جشن عروسی پیرمردی قوزی از کسبه قونیه که توی دهانش فقط دو دندان داشت پس از آنکه مراسم را کنچکاوانه و با نیشی تا بنا باز تماشا کرد گفت قونیه از موقعی که قونیه شده همچو تشریع جنازهی ندیده و بعد اضافه کرد البته اگر شب عروسی سرورمان مولانا را که چند صد سال پیش بوده حساب نکنیم سه روز پس از تشریع جنازه که همه مهمان ها رفتند الا که تک و تنها مانده بود تصمیم گرفت بار دیگر شهر را بگردد. خانوادههایی را که کالسکه بچهشان را هل میدادند و از کنارش میگذشتند مغازه های پارچه و ادوی فروشی دست فروش هایی را که با سماجت میخواستند چیزی به او بفروشند همه را مثل فیلم سینمایی تماشا کرد. آنها هم به این زن آمریکایی ای قد بلند که درست از میانشان میگذشت و چشمانش از فرت گریه پف کرده بود کنجکاوانه نگاه میکردند. الا آنجا غریبه بود. اما در آن لحظه حالت روحیش چنان بود که همه جا غریبه به حساب می‌آمد. پس از برگشتن به هتل، چمدانهایش را بست کتش را درآورد و پولیور کشمیر صورتی رنگی به تنش کشید با خودش گفت برای زنی که سعی می کند نیرومن از آن چه هست به نظر برسد زیادی خوشگل و زنانه است. اما برایش مهم نبود قبول کرده بود هرچه بود بود بعد به آمریکا به دختر بزرگش تلفن کرد. از بچه هایش فقط جانت هنوز با او حرف می زد. اورلی و ایوی یک سال بود با مادرشان قهر کرده بودند. جانت هیجان زده پرسید. مامان چطوری؟ الا غمگین و شرمنده لبخند زد. دخترش که زمانی عشقش را تحقیر کرده و برایش درباره بیهودگی عشق نطق قررایی کرده بود، با ازدواجش با مردی که دوستش داشت مخالفت کرده بود، امروز تنها انسانی بود که حمایتش میکرد. زیر لب گفت، عزیز مرد. از تلفن صدای خشخش آمد. صدای جانت قطع و وصل شد. آه مادر، خیلی ناراحت شدم. تسلیت میگویم. مدتی سکوت کردند. نمیدانستند چه بگویند. سکوت را جانت شکست. حالا دیگر به خانه برمیگردی؟ راستی، الا در آن لحظه واقعا باید چه کار می کرد؟ کارهای طلاق بدجوری گره خورده بود. به نظر میرسید دیوید هر کاری از دستش بربیاید بیاید می کند تا جدایی سخت تر شود. نامی بلند بالا و خشن نوشته و در آن به الا گفته بود حسرت پنج سنت را هم به دلت میگذارم. شوهرش عصبانی بود و دو قهر کرده بودند اگر برگردد کارها بهتر نمی‌شود به علاوه نه پول داشت نه کار اما خب میتوانست همه جا به انگلیسی تدریس کند در مجله ها مطلب بنویسد یا اینکه کسی چه میداند روزی در یکی از مؤسسات انتشاراتی ویراستار راستار شود حتی رمان خودش را بنویسد چشمهایش را بست پیش از این هیچگاه اینطور تنها نمانده بود اما عجیب بود که خودش را تنها حس نمی کرد گفت: جانت، دختر عزیزم دلم برایت تنگ شده. دلم برای اورلی و ایوی هم تنگ شده. رفتنم هیچ ربطی به شما نداشت. محبتم نسبت به شما اصلا کم نشده. جانت با پختگی گفت میدانم. الا پرسید برای دیدنم می آیید جانت گفت البته که می آیم می آییم مادر فکر دوگلوها را نکن. میگذرد مهم این است که تو خوب باشی. الان چه کار می خواهی بکنی؟ مطمئنی که نمیخواهی برگردی؟ الا گفت فکر کنم به آمستردام بروم. آنجا آپارتمانهای زیر شیروانی نقلی و قشنگی هست. می توانم یکیشان را اجاره کنم. اما باید تمرین دو شرخ سواری هم بکنم. خندید. هیچ برنامه ای ندارم جانت. نمیدانم فردا چه می شود. پس فردا پنج سال بعد چه می شود. تنها چیزی که میدانم این است که زندگی را از نو شروع کردم. خب این هم یکی از قاعده هاست مگر نه. ژانت پرسید کدام قاعده مادر؟ در چه حرف می‌زنی؟ الا به پنجره نزدیک شد. به سایه روشنهای آبی رنگی که آسمان را فرا گرفته بود نگاه کرد. ابرهای سفید و ظریف مانند تور آرام آرام در آسمان می چرخیدن. با خلع در میآمیختند و آب می شدند. درست مثل سما زنها شمرد شمرد گفت قاعده چهلوم عمری که بی عشق بگذرت بیهوده گذشته نپرس که آیا باید در پی عشق الهی باشم یا عشق مجازی عشق زمینی یا عشق آسمانی یا عشق جسمانی از تفاوت تفاوت می زاید حالان که به هیچ متمم و صفتی نیاز ندارد عشق خود به تنهایی دنیاییست عشق یا درست در میانش هستی در آتشش یا بیرونش هستی در حسرتش Thank you.